the yeah. تکمیل بکنیم این مرموم سارماله از مرموم سیده مرتزا نقل کرده نکس را حادیثنا المرمیه فی کتبنا معلومتون مخصوان علا صحتها اما به تواتر من تری اشاعت و اضافه اما به علامت و اعمارت للل علا صحتها اینو مرموم سارماله نکرده در منطقه طر بر ما در کجا ک س عض را کجا نعمل میکنه نمیکن و یه موجبتون کهعلم مدیت ها لرلق و وجد ها ها مده هم که کطور به سرز مع خصوص اگر این مقدار با شقبارات سشون دراسشون بر کرد این مقدار خوب درست بر حجیت روایات نه به لوازم وجه شطر واقع میکنه به علاوه که عمل اصحاب و اجماع اصحاب در این مطلب وجود داره و بعضی ایشون هم, هم دل. مزار با معالنه عرض باشه خود مرحوم شیخ هم معنی اینه هم تا ذکلمات صحیح و مزه نیدند انما موضع غیر قول امام از علی بن رمالن حق قداره که فی بلعلا بلعقر یا عقل بلعلا فی هرد شما علمانیه دوست محضر رو خود مرموم شکوهور از صاحب معالم از سیر موتدان حرف میکنه از فکر میکنم اگر این محضر درست بوده میسه درست محضر محضر خود صاحب شکوهور از اونجا مسرین هم بگی برخواه فعلت من نمیدون بله بعد مرمون های شیف و چرا صاحبه سیر موزه گوزه اکثر احادیس نام بله ایشون <تصفيق> جواب میده که اما لعن بعض کتب کاند غیر معتمده و کاند متمیزتاً عن کتب معتمده تو الاخر کرام و اما لعن احادیس کتب معتمده هلتی یقتع به ثبوتها آنها فی, فی ها ما معارض احوامه یا بخاطر وجود معارضه یا بخاطر این که برجه از کتب مسلم نبوده و نظام ایشون البته روزه سالوه و ساله سندبخ پیدا بکنه که گاه این مراد ارسه هست یعنی سی که هم سندبخ درسته و هم معارض نداره و ایشون مخاطبی که دو جورت هایی میشه صحیح هست ولی معارض داشته باشه درسته این مطلب ایشون که گاه وقت صحیح بینه اما این یه سید محتضا که این رو اراده کرده باشه حسابا خلاف زوافر کلمات شد برمی بعدم. بعدم نقصه رو اینشون در اینجا نرمه کرده که این شاده تو در بحث رسول بیانیم بیانیم که این از شیط نرمه کرده که سید محتضا که میگه خبر واقع در رو نظر میبرن در اخبار اخبار است که مخالفی نرمه این محلی رو عرض کرده این محلی رو مزموم شیخ انصاری و بعد علمای بعدی اینجا نارو خوی این مطلب رو در جمع بین کلمات شیخ و سیل آورده که شیخ که ازدایی اجماع میکنه به روایات اصحاب و شیخ ازدایی اجماع سید که ازدایی اجماع میکنه خبر رو کن جنید خبری که مخالفی نماز و سیل بخاری و مسلمان اینم ایشون در اینجا داره این مطلب رو بله. این مطلب رو داره بعد می فهم به قرصه راه حسن که و المعالم ایزن انها و انها کتب اربعه هم ها محبوب هستون قراره خب این هم راست این ایشون بعد صحیحه بعد هم متعرض ایشون عبارتی رو چون ما این سعی کردیم فرش نشه عبارتی از بحث اجازه معالم خود معالم بعد از بحث خبر اجازه از این عبارت روزه انا اثر الاجازت به نسبت الالعمل انا ماید هر حسولای کنو متعلقا معلوم به تواتر و نحوی که کتب اخبار الاروه این ها متواترتون اجمالن و, و علم و به صحت مزامینه ها تفصیلا یستفاد من قرارن لهوا همده که زاخرن مرموم های اشتباهی برای شهر مرم صحاب این کتابها اجازه نمیکنن کتب اربعه نه که روایات رو که و م صحاب معالم از ان عبار که روایات کتب اربعه متواطر مراد صحاب معالم که کتب اربعه متواطره نه روایات شم تعجب میکنم از یشون پ مرهوم صحاب یه وقتی میخات رو به جمع بکنم اه ال میشه علایه هاده چون ببینیم لایفون معلوم به تواتل و نحره که کتب اخبارنا خود کتاب ها متواتب هست مراده مراده مرد یعنی کتاب کافی اجازه میخواد چون شرابون کتاب قبلی مراده از اون رو نمیخواد نه اینکه روایات ها فهمیده یعنی میشون خواهدی که تمام روایتش معلومه بسند نه روایت نه بله و معلوم من هنه حال کتب کتبه, کتبه متقدمی کنه مختلف نه حال کتب متقدمی کنه بی زمان مهنده یک کتبه لبره کرده مختلفه بسی این کتب حسین سعید کتب همزر محروف کاملا محروف کتب محمد این سنان در خطه قلوب محروف نه خطه کتبه فکری محروف داشتی که دابات بعضی هاش واقعا خودم هم اون نگاشی که ایشون کاری که خواه اون تو که اصطلاف با و شیش عبارت رو نمیگید و عبارت طولانی از شهید اول در ذکر آورده در باب اتباع مذهب امامیه را چی بعد بعدیشون درشته وجود زیادیست اینها اتفاق على طهارت و اممه علا طهارت العیمت عشق علیه مستلام و شرف اصول هم و ظهور حضارت هم و تواثرشی از دره و تواثر نعره یعنی عیمه علیه مستلام هم طهارت ذاتی این الله سفاعت و اردانی و هم به جهات به قولیشون تبیرشون اجالت از که در ملافتر ادالت هم در نصال دارم آمه آمده کتابی هستن هم رحمون فی شهر سلم و سبوکی در کتابهای درسی کتاب های عثمانی ها در حصول چاپ شده با کتاب ها مستثای حضاری چاپ شده در اونجا در بخش به اصطلاع ادالت رو اینا میشه میگه شیعه دایی اسمت میکنم برای میشه نه کیمیت در خورشید زرلا عثمان آن سال شده شود میگه شیعه دایی اسمت برای ائمه میکنم بعد خودش میگه میگه اگر مراد اسمت اینم نکنه حواله باشه موسلف نمکنه موسلف میکنه معلی موسلا ایم شیعه یشته نه بله که و اگر مراد حواله باشه نرجو نم. نردوانیه کنم امیلش هست یعنی بگم که یعنی حتی م... نمیتونه ای سنی در دوان عثمانی با اون گدرده که بین عثمانی و شیعه بود باز هم نه تمام استه حتی رو نسبت بوده کمی روی که اتود مسلم علایه به ادالت کرده محسی ادالت بارتر باشید اول این حتی هم نرواد جزا جعبا به محمد مسائلی، به نجیر لعبارفن. این هم گذرد که ما این شهر سال ساله نمیدونیم. اینجا تبدیر بله به عنوان مصنف اونجا برمان ننفی من رجال و درد من رجال معروفین اربع بحث و آدات رجل من اهل الاراق و حجاز و خراسان و شام البته که معروف نیستم از نیکنم انصافم که دقیق ما باید شدمه شدمه رو به کار گیردیم به جواب بدیم این چاریزا نفرد من برز این شهریدشون از واقعی ندارم و کال که این مولان از علیه السلام و رجال و در و و و این معلومه السلام مروفون مشروعون قدوم و صندفات این مشروعون این که در زمان امام ساده و بود نیست البته معاصر بودن است و آمده شو سعید و آمده رومان در میزه و ما آسرودن با آن رجال عمد. ام این مانع که از گرسننه سال و به جمله اسناد و نقل و نقلت آن مالی کوسلامیه دیو از آفن کسی و کل واحده منو از بعد از همه امین ما، من جوانی نقل ماتم رو اما مجموعه نقل معادل هامه باقی صادره از مجموعه نقل هایی که اذعان میموندی بیشتر راست این مطلب درست بعدیشون هم مثل انسان یک تزریق بین به منو هم ای این جذبی که مربوط شهید به کاربردیه، آره بعدا توضیح میدم. اگر مرازش خودجیت همش نمونه تا یه حذفی شد رام، اگر مرازش واقعی باقی شدی میمونه. لا حينئذ نقول الجمع بين اداله اداله و ثبوت هذا النقل عنه مع بطلانی می مایه یعنی تایید بین این دو توکن درباره ماجودیت راست بینه اما اصل اما اثبات کله وارد وارد نمیکنه کتاب کافی بیشتر از سه حال سته اینم درسته مثلا سوالات 4 کتاب <ساید> کابی بیندی که 30,800 تا 600% کمتر زیده زار است و کتاب و مدینت علم و مدار ازدار تقیید تقیید و منظره نه این جلوس نیست مدار بود سه را خورده ایه اما مدینت علمشو نداریم، توصیف شده ده جه خود مدار ازدار توصیفش شده چهار جهر کردن همون مدینت علم توصیف شده ده جهر اگر در باش باشه بودو در دوازه هزاره هنی در دوازه هزاره هنی در خیر به کتاب کافی او و کتاب و ولی استثال نخوز دالک نمکن و غیرها ممایتور و تبدال رو به هسانید صحیحه المختصده المنتقده وله حسان و حویه از ایشون مجموعه سه از حدیث و نفتر صحیح یکی حسان حسن یکم قبی این کار آیا یک قسم دیگه اون بحث اشاره کردن ولی این کار بعد داله که مکارورتون و رو سر مراده را هم اول نیمیشون که تمام این کتب و آثاری جهنم شده این درست نیست راسته خوبیم برد که تمام اینها کتب ورده ای ورده ای ورده کتب تماما بعد و ایش شروع کردن راجع این که کتبی که گفتیم مصنفات سبو اینا معلومن متواترن در حایت شباتنا از سخب از این کتب منحصره به کتب نیست کتاب شه سال هست کتاب, کتاب سبو هست کتاب هست از اینا شهرتشون و نسخشون به اندازه کتاب کتاب عربعی نیست مطاقا که اصولاً کتاب عربعی ما اون نسخه اصلی اصلی هم ندارن مثلا ما الان هیچ نسخی از خود کافی نداریم قلیل رو کافی هم نداریم ترمان حدوده مثلا چین حدوده 90 سال دیوی سال ولی این ترین نسخی ترمی کنم ناقصه از کافی از خود تقدیر نسخی خیلی بیفرابانه اما خود محضب برند یکیش نداریم صدود من بعد ایشون داره که مثلا خطوطی در این نسخ که اگه راست اجازات خیلگردین این ما اجازات دارن خیلگردین حتی کتب در دو سه ای ما اجازات دارن اینا درسته و اینها ایشون میگه به اکثر آقا لرفت صرف شغرت دارت تواطر اند کتب اول در راسته بعدش واقعا که دارن اما این شهرتونی ها یک تره این که جمعی حادیثشون خلاصی تندی رو که مرموم شهر رو کرده خلاصی رو این اون اینی که ایشون مخواد بگرد خلاصش اینه در کتب مشروعه اتحاب هست تمام اینها ثابت هم خلاصی حرفیش و اون دست اساسی خب تاروز شد شد بکنیم میگه بله تاروز هم هست اونم ثابته تا رو خود از من اخوار علاژیه تا در این خلاصه ی تفکرش هم خلاصه ی کلمه تفکرش هم بعض برسه بعض برسه برسه صحیحه برسه برسه صحیحه اولا من میشه مردموشه کنم برد این دو استداره ثابت و بجت فرم نمیزن این خوبی است، این بحث امینی نیستی یه ما میگیم این روایت خود جت یه دفعه ثابت که ما درود خیلی این دو تا از این تاسفان با هم یه فرق داره ایشون اصرار داره ثابته اون وقت را هم علو داره با روایات الاجیه خود روایات الاجیه با هم یه تهاجوز دارن یک خود ربارت الاجیه العلاجی اضافه بر تهاجمی که با هم دارند ما ان شاء تعالی در بحث تهاجوز استفاد می‌کنیم اصلا روایات العلاجی نازر به تعارض و ترجیح نیستند ناظر بحث حجت الله حجت در اشواب بود اونم ایشون توضیحش رو داد این دو اصولاً چه دلی داره و بیشتر سر تعارض رو هم تقیعه حالا یا در خوف در یا در تقی مداری بوده یا تقی خوفیه بوده خب پس کل طرح کلی مرحوم صاحب وسائل اینه کلیه روایات کلیه دستور به معترض مشروعه معروف اینا تمام ثابتن یعنی حجت هم گفته یه چیزی ثابتن تاروز هم با هم دارن و این تعارضش رو باید حل بکنیم به روایات ادلایی ببینید یه بحثی هست این بحث تعارض و شدت تعارض در روایات اهل این دقیقی هم صحبت کردم این بعد سنت از, این این از این کتب از سنت محاصر ما یکی از اشخالاتی مثل این اصول کتب الامامی هست که کتاب یک سجل که به نظر من این سن نفری که جمع شدن به این نفر چاک شدن و دروح زان سرمزی باشه خب خیلی این سجل سعیل کردن تمام کتب شیعه دارن و اون چی که امکان داره اشخالات اساسی بر منحب شیعه بارد دیگه از اشخالات شی شدت تارز در وسط داره. یکی از کارهایی معمول می‌جو. محسوسان که عبارت شیعه توسعه موجوده که تارز در وسط داره ازیا. شیعه توسعه تو اول کتاب تحریز نام می‌کنه از استادش معصوم شیخ مفید رضوان الله تعالى علیه به که اش. البته او شیخ موفی زنده بوده. به که شریف، شریف نیست شریف، شریف فلان نه فلان. این شیعه رو صندیشون. به خاطر کسرت تعارض روایات عقل یعنی اون سید گفت که بابا شما مثلا ما به مذاقب اهل سندت مراجع نکنم چون افتلاف دارم که با شافی شافی با اینها اینا ها با هم اختلاف دارم لذا مراجع نکنیم به روایت به فتاهای علمای سنی خب ما میگم به که شما مارزیم تعارض روایت که امام واده شما میشه اگر براز تا آرزز به این ااننی با مالک باشه شما از امام وارد از امام صالب پیش از این تا آارز ن میکنیم و لت این چند هم تشری آارو به دررسون می شد شیخ توصی نرم و دان شیخ توصی در حقیقت هم در تیم هم در استرسال با این نقطی که تا در روایات شره زیاده سعی کرده ح ببینید این نکته اساسی رو دقت میکن، ما چند بار این نقطه رو توضیح دادیم. طبعا اون شدت تعارضی رو که شیخ قدر صلی اللہ محصه این در حقیقت ایک از عوامل اون شدت تعارض خودش شیطه یعنی اگه شیط نبود ما از سر نیدوستی توی این محصه برابطه ما آرز داریم چون قدر شیخ مرمون خلیمی یا مرمون صدو حتی در فرق استادیشون مرمون شیط مفیق تا کلا اون روایات رو حذف کرده بودن طایفه از روایات که کلا حذف شده بود یعنی شاعرون به اصطلاح بنده از غیبت صغرا که یواشواش ما از بخش روایت اصلی به انتقال از نصوص به خطابا اصطلاح بنده این انتقال از نصوص خیلی از نصوص ما حذف شد اصلا حذف شد بود در کتاب حاضر در کتاب‌های معتمدم بود اشتباه نشه در کتاب ابن سعیدم هم من همین اخیراً نکته را از نظر تعبیر خداوند گفتم چه جوریه که ما این با خداوند ما نمی‌دونیم منظورمون بر اساس سیر ال ات نظرش بوده نظری که تعاورات شیعیان مشکلی ما زادا نوادره حزره بعضی مصادر بوده شما مبانی ما در اون زمان یکیش طرح بود مثل یوسف نزد یکی جمع بود که شیفه به نظر من میاد که شاید مثل حسین سایدان جمع باید شیف نباید مثل شیفه باشه یکی هم تخیر بود که مثل کلوی نیست مثل که ترجیم این برها پیدا شد بعد از علامه مثلا مثل که مطرح نبود مثال که مطرح بود این بود توضیح شد پس منابراین اصحاب ما پس اصحاب سی ست. تا 420 مثلا این روایات معارض رو ترک کرده شیخ سوسی اولی کسیست اگر شیخ نگفت بود در حالت متعارض بکنه اگر شیخ نبود اصلا ما نمیدونستیم حدیث متعارض داریم که بکشه اولی کسیست که این تعارض رو در این سهلی و بعدا اینقدر به سر گرده بی الآن در کتاب از سانتی ما از پشکالات بزرگی شد بشه همینه <متحد> و این توجیه صاحب وسائل این هم واقع اینا تبسیل نداریم در حضرشون دباید در حضرشون دباید در حضر بکشونده چون میگه هر دو ثابت هم دو صاحب زن هر دا هم صاحب زن یا ترگیر و من در این بحث قبلی یک بود مطرح کردم نوکیا سؤالش اینه تا اون دیگه در متابولیسم گوارشونی هست یا تا اون در متابولیسم گوار خودش بوده بوده مثلا شافی قد در ایراب بوده فردازی میر که رفت خودش شد. شد نظام عرب در شواهد مثلا قدیم وارد شافی خدیم قدیم وارد چدی موارد خدیم قدیم موارد در شده جدید هم آرار بیده درمیت داشت اون, کنه. اون در فتابا شافی یا عربان اون تاها رو سبوتیه یه در, در بازن همیز رو بوده شیعه هم و خاصن همین رو بگن اینا منسون رو تو درام اصلا یک فرطا در درمیت و اصلاحشون عرب شد. و خباستان که اگر این مصاب شون محصومن معیین نمشن ایدالا اینا فتاها شون حدث نمیشه شون فتاها شون رو دیاس که شادینا نیست این نماهی حصوله ایمه در سواقه برد کار پس در این دیگر کنی این مشکلیستی مردم شخص به شمعتلا شد چه به توسید جلاله انشا بعد شام برسها سرایت ها سرایلی درد حتی اختوار ها کرد اون نقطه ایفندی رو مدفل با رو شد کن اونی در در در در که ما در روایات درده در تا تعارض در ترمان درده اثباتیه نسو بودیم نه اینکه امام سادر دو تا رایی اصلا تا ده سال اتفایش نیم بود من برگشت و اون روایتی که بیرونس نردار امام در من نردار تا بودن من امام صادق نه چوابه هموزنا یوش به اون چوابه آخرنا نه چوابه آخرنا یوش به چوابه هموز اما ما همه این مطال رو یه چیه خوب در فرق بگوانیم اختلافی که فیداشته در نسبت به ما نهی که ما ستا رایی داریم اون سکر وزده نکه شیعه و شد فرقه این اختلافت باره لکتاییم خواست ها در حقیق تا این نقطه تنده و سال و سال این دفاع از برای در حقیق نیست ما بیدیم تمام این روایت ثابت و ساروزیشون یه کاریشون این دفاع نیست در چون اگر ما تمام ربرای در حقیق سابطیه بیدیم تا آراز در حقیق سوشی بیشه ناسه ساروزیشون بایی اگر شما تمام یاد ثابت کردید نم ساعت بعد یکی گفتی دو ساعت بعد همیشون جد مشکلات داریم چیز داریم نه. خود ایمان فرم لردایون در لذا که داره که نامی نمی آنیه درکه آن امام سایه از اونگو برزارهی بشه زاره بسند دو سایه بعد از زنب هم دو سال شدید باید من شد او هیچ چیز نگو بودن از در بازم بود که همون مثل به یک سایه باید با اونم دو زراره بودن با اونم این هست و خواهد نمشه امام به من بودن اونسی این برخواه کردن که بودن اینکی واسطا بودن امام بگرمه من سمدن این کار این چیز نیست که دقیق اینو خوب دقت بکنه اینو کار در کجا پیدا شده امام صادق در رواز فرید در مختار یا آمد وارد نصب کوفه میشن از درس اصحاب ما اختلاف داره یکی یه چی در خونه همون یه چی دیگه همون اکاز عشق و فکر دیگه دیگه شنگ بکنم مثل اون روشت فریده فرید در من مختار امام جو فرید در مختار امام جو کسی نمیگاستن یه حرفی هرین که میگن میرونی رو خدا به اخلاق این اخلاقش وقتی کله دیوی با کن همه دنبال دلیل جستن این برای خودی که فکری فکر رو اون برای خودی خط بکشیم اما اون یکی من سرع کو ما با جمع شواهد کاملا بر واقعیت بوده معنای مشترک حدید بوده اصلا اثر نداره احتمال بسیار قوی داره چه که میده از به آیاز محکم هرز شده قبلا و همون اعتماع طبیعه بوده نه نمیتا آرادی که علام داریم چون من اعتماع طبیعه این مدره وقتی زمانی محسوسا که اومد نهزاره ازم میکنه طبیعه شما اونجه کتب در روایات احسان نده یا بوده اجتماعی قانون اجتماعی امان فرح بیشتر بود اجتماعیه نه که تو بنا ما اگر طبیعه میکنیم از سلطه حاکم که خب اینا بایدن محدودن یه داره سلطه حاکم از حاکم محدودیت داره پس بنابراین کوب بفترانی تعارضی که در روایات رو تطلبه که این تعارض اثباتیه تعارضی که در سلطه باندر هست سبوتیه و رضا این رو علماءی ما و علماء شاید میادن بر گزنان مداربه چون اینها من منعمدال نیستن امروز فتواش نه فردا فتواش عرض میشه مسن یک از بحث اساسی این بود نمیشه ما شریعت ا افراز بین که فتواش عرض میشه امروز یک فتوا زه ف یک فتوا در فتابای ماد شافعی من احتمال میدم منش ون اصل اشتباه ظاهر شیخ شروع شد سرشم این بود شیخ ا به هجر خبر شد وقتی قاعد رو خبر شده از اون حجر این نیست که این حجر این ثابت دیم آنستان از این خبر شده. اما شبازه نیستم اما صاحب و صاحب شیخ خور به سبوت خبر شده این بکتر شما قاعد به سبوت شده قاعد کجا مشکل پیدا کرد کسی که به سبوت شد که هر, هر در کتاب هر در دو بود و مشروع آمنه این رو دارن و خواهد خواهی نخواهی خواهی رو سبوتی گرفت نه اثباتی اصلا به من متعلق به را هر کسی در راید را توانه را تو نهنداره ما خواهد سبوتی نیست اصلا من خواهد اثباتی هم ایم. ما در فمیزه و جهنل آنجا بحثتر مقبل ما دو جیده نماردجه هاته ایدر اون دوباره باید اماد در حقیقت اینه تو بودی ها شما اگران هم پس بنابراین هم سال در ما در اینجا با این کارش یه مهدار کار رو حرام کرده در درست کنه دارم. خب ما آمدیم گفتیم در این مواردی که تا شد و شما سبوتی اصباب کرد با اون شباهر خردهی با اون شباهر فیدستی با اون شباهر سایفی حدود هشتات در سال رو به و کتب و روغات نسبت دارید نه به امام حای این بهتر دفاع از مکتب هم دارید که دارید شما کشم آمدید شما آمدیم گفتیم هم درست شد چه کارش ما آمدیم گفتیم سا آواز اثباتی بوده ساید اثباتی هم دلیفه. اون اثباتیش هم چیزی در حدود هشتاد در سال قبل از ایمه سبب که ایمه هست این راه درسته در اینه با یا این راه که شما یا باشید. باشید. این راه به ما سبوت را قبول کردیم حالا اگر محول در سابس هست چون پس و اعتبار بر جمعی سبوت. اگر با صحت و اعتبار در اول بود انصافا با یه فاصله هزار ساله نومست ساله انصاف بیا میگه اینها ثابته که امام ساله میگه برمسیلی ارچیبه اونم در جایی که متعاردن کاملا تاراض دارن خیلی واقعا به در ما کمیل در در و سیلتر به اطوائه ها مثلا درداششون و تنمالشون و تنمیشون از رواییات و جهاز تاریخی و شهاز تاریخی انصافا خیلی زریفه بیاید بگن ما سبوت خواهد هستیم یا باید باید باید بید بید بید به که میگه به و از سر اینجور که خب فعال هست با اخبار علاقیه ارزش بکنه می نکرد و همه را به تقییه حالا یک که خیلی نمیزن اما ساورده این کار را داده. حتی تقییه در شرایده نیسته دو تاریخه اروایت سرم بیش نه این طایفه می‌کرده سرطان نمازه، بله، دو تا طایفه می‌کرده روزه واغذا. در یک طایفه داره که قبل از زوال روزه می‌گیره. حساب بعد از زوال روزه می‌گیره. یک طایفه داره به تبیین نیت ملل. این دو طایفه می‌شونه چون هر در روزه بگیرن، باشه؟ قبل از زوال و بعد از زوال خب این تصور این که اینیشون بیشتون اندبه بردان خادرداده این ما تقییه لازم نیست مطابره بکنی یعنی هم دوگاه تحجیب میگو که یه طرفش مطابره ایش نه این هران از مختصات شیعر در رواید اهل در کلمات سونی اصلا نیمانه باز برماظت اینجا بردانی جان کبیه تصور اولو رو ر اینجا از این معلی به نحر تقییه صادر شده و این رعی اصلا کلا در میان سنیا نبوده اشتران هدف فعیمه که از احضاق فعیمه بوده که شیعه آرای مختلف مختلفی باشن حالا اصلا اون محطبی که درن خالفت و موردش در نماز نماز تمام اون مخالفت هم درسته یعنی میشه نماز در بل نی ساعت بعد از خوب سه ساعت بعد از خوب درست خوب هر روز این چه که داره بحث روزی که یکی درست بگیر باطله این قياس عادت برقرار نیست این قياس عهد و به آخر انصافا دور از انصاف فرض مرحوم شیخ قدس الله نعشه اینکه کسی که فقط این با کرد چون قائل به حجیت تعبدی شد وقت روایات رو از کردم خود من یه مرمون شیخ به این تفصیل نیورده خود من اعتقاد من هم اینه شیخ که از بغداد آمد انصافا در اون زمان این در بغداد یه راهش بود یعنی شیخ واقعا با این فکر میگرد یعنی دخص حوجی یعنی تربوده به واحد یک مطلب علمی راهی در بغداد بود این یک از یک سرم از از روایات از حال ما ترف شد این هم بود این واقعیت بود دیده. این روایت هم در قطعه مشکوله بود. مثلا کتابو با قطعه سمیسری بود. در اصطلاح سمیه وقتا اصطلاح شیخ نه رویه کرده من حرز میکنم. خب ممکن بود اهلسانت سنت بیان این قطعه سمیسری نیمتور نیست. میگه که سنده سریعی نیست. چرا شما این روال سنده کردید؟ برزادی هم مثل مرمون شیخ سید مرتضا با اون راه معیمه که کرد از جواب می دلن. شیخ ظاهرا برنا شویی شد که بیاد حکییت خبر با قبول بکنه حکییت خبری آنکه باید اشتا مواجه شد لذا ایشون در حقیقت آمد این نوع دفاع بکنه از نتیجه دفاعش هم این شد در عده از موارد جمع های بسیار اگه بلگی بکنه محروب جمع خبر روید در یکی از مواردی که دکتر کینا تا ندارم. مثلا در همین مسئله در مسئله احرام قبل المیقات چند بار عرض کردم روایت این داشتون به اینند اعلامند نواقضی که وقت رسول الله رسول الله صلی از اون و که نزد کده احرام در کوفه قبل از میقات امام میگه خب تا قبلش که تصوری که بود که این روایت نه با اون روایت مطابقه روایت نه سو کرده کردن نه کلیمی او برده نه شیخ توسی او صدق او نه شیخ موفی در مقنه او برده اصلا فوقه ما خب در کتاب حسین مسئید هم بود روایت نه در کتاب عوضی مسئید بود اصحاب اعراض کرده بودند از این روایت حالا سر اعراضی چی بود شیخ آمد گفت این روایت کتاب معتبره. تول ماهد از نموگت در اینجا اون قاعده اصولی رو پیش اون قاعده گسوری تخصیص گفت خم چه مشکل اول قابل جمع دارم پس, پس این بود که تبایون تخصیصیدی و حقم همینه برای بخواهم توضیح بودم حقم همین تبایونه شیخان اون اینجا تحصیلت ای اطلاق داره. لا داره. در رسول الله و اعلام در موافقت رسول الله سوال کرده نظر نزد ایشان داده خاص بگیم احرام قبل میخواد درست مثل معنا ده یعنی چی اما قبلش چه اصحاب ما چه در کتب علمی در کتب فقهی اثر این رو اشخاص کرده بودن نه صدوق او فقه ده نه روایت نه کلیه اورده نه پس ما خب چه قدر صلاح نسته؟ در مکنه می کنم چی ارزو کنم؟ چون می دو تا دو سه تا قاعده رو پس یک ترقی از ها بوده ترقی از ها همه بود که یک بس فنمی و بود چه خب با بس فنمی ما قبول بکنیم یه خود جید قبل این در معروفه نروح آمده که دار نروح دو تخصیص اولا هم تحصیل جمع مربوله جمع اوکیلی که این تو بایده میگه یک آم داریم یک هاست دو جمع میکنیم چرا سرش رو با این که روایت در کتاب معروفی بوده، با این که در مورد یک ترمخورده این روایت احراض شده بش کنن از حال ما نخود نه خود روایت رو بودن نه خرک باش رو بودن شیخ دو مرتبه این اینطور نیست گاهی اوقات شیخ همیشه جمع تبرعی بکنه مثلا روایی ها تقریب وضوع هر پرمزار بست اینه از ها شدن ازا ناظر اینوز به موضوع که شیخ و روایت به شوق بردن شیخ کولیمی ارده رو, بیر رو بیر هم استاد که هم. شیخ ترسی خب ببینه این روایت در کتاب سعده نفضل از کتاب مشروعیه ای چیزی هم در کتاب نوازه رکمه هست خب از او برم میبینه که اصحاب پسوان از آزه میکنه ای اوزوانه افرام در جناب پس من روش رو باشیده اون حالت و ایکار خیلی ایسون گیر یه مردار رباییات در, در کد این به این صورت خود ش خرمشت اصحاب ایمان در این اینه من رو آبشت این حد من همزرم به از یک همین بزرگی بود. الان هم این کتاب علمی هست در قابل میرسی در که شیعه یک جور ریسی تو باهره بعد قبول جلالی تو آمیره میرسی هست شکل فروه میرسی این قومی رفت بردار بود ایشون در بردار با این رو روی در سویته در حوال روی و این تاروزها رو به این انها این که شیر تاروزها همیشه با جمع جمع نم یک جایه گفتری مخبوله تحسیل حالا اصافه برده چون نه این جمعه این خطیش ها اصافه برده و اصطور همچیه به خبر واره تحبوز آهده بسیده از, از دلخول. جمعه مخبول بود اون جا اگه برده از در خود ارده ارده ارده نه گفت اینجا حالا براجع اومدیم براجع قبول کردن خب چوری اینو توضیح قبول قابل متوجه نه هر موقعی فانا هر و توضیح بدم توضیح دادن خیلی خیلی تو که یک مسئله مشکل تا هوش در حال نشی الان اینکه به ما گفتن تکیه راهی رو که شروع کردم متاسفانه به نظر ما راه درست ندن این راه رو بعد به صورت در اینجا نه بار سمود خب ما با شوارد و خلالی مراجعه میکنیم با شوارد تاریخی مراجعه میکنیم نسر رو با هم مقابل گفت میشون نکرده مبادرم اصلا از کتاب نبادر اینجای هر سه نفر نمی کنند هم کلیم همشه که سبوب همشه جسوسی هر سه نفر از یک مستر هر سه نفر هم با همشه را رو نمیشه بگیم اینا ثابت صحابه ترس پته هم انه در چه این و چه این راه رو اصلا روشنی دید. البته این خاتمه فایده ششم نیشان تموم شد یک چند تا فایده دیگر داره که ایشادا بعدی روز بعد از تکیز آقا